فصل 3 پشت کلیسا آن طرف خیابان روزگاری تکه زمین بیدرختی افتاده بود اواخر قرن پیش بود یعنی وقتی که ما به ماکندا آمده بودیم ما و هنوز ساختمان کلیسا را شروع نکرده بودند تکه زمینی خشک و بیبار و بر بود که بچه ها پس از تعطیل مدرسه در آن بازی میکردند بعدها که کار ساختمان کلیسا شروع شد در گوشه آن تکه زمین چهار ستون نسب کردند که کاملا معلوم میکرد این فضای محصور دقیقا برای ساختن کلبه ای در نظر گرفته شده. و همینطور هم شد مساله ساختمان کلیسا را در آن نگاه می داشتن. وقتی کار ساختمان کلیسا تمام شد، کسی با خشت خام دیوارهای آن کلبه کوچک را بالا برد و توی دیوار عقبی دری برایش باز کرد که به همان تکه زمین کوچک و خالی و سنگلاخی باز میشد که حتی نشانی از بوته صبر هم در آن نبود. کار ساختن کلبه که به اندازه دو نفر جا داشت، یک سال بعد تمام شد. توی کلبه بوی آهک زنده پیچیده بود. این تنها بوی دلچسبی بود که دا مدتی مدید در این چهار دیواری محصور به مشام میخورد و تنها بوی مطبوعی بود که میشد برای همیشه از آنجا شنید. موقعی که خانه را سفیدکاری کردند همان دستی که ساختمان کلبه را به سامان برده بود برای پشت در کلبه کلونی ساخت و بر دری که به خیابان باز میشد غفلی زد. به صاحبی نداشت هیچ کس به این فکر نبود که در مورد آن تکه زمین و مسائل ساختمانی مدعی حق و حقوقی شود هنگامی که نخستین کشیش بخش از راه رسید با یکی از خانواده های خوشبخت و آسوده ماکوندو کنار آمد اما پس از مدتی به بخش دیگری منتقل شد در همان روزها و احتمالا پیش از رفتن اولین کشیش زنی بچه به بغل کلبه را اشغال کرده بود و کسی نمی دانست که او کی آمده از کجا آمده و یا چطور توانسته در را باز کند. یک گوزه سفالی سیاه و خزبسته در گوشه ای و سبویی نیز از میخی آویزان بود. اما از سفیدکاری دیوارها دیگر اثری نمانده بود. خاک توی حیات بر اثر باران سفت شده بود و روی سنگ ها سخت و محکم شکل گرفته بود زن برای در امان مندن از آفتاب توری از شاخهای درخت بافته بود و چون هیچ وسیله ای نداشت که با برگ نخل یا آجر و سفال و حلبی سقفی برای کلبه درست کند درخت انگوری کنار شاخهها کاشت و یک دسته سبیلا و یک گرد نان از در رو به خیابان آویزان کرد تا خود را در برابر افکار شیطانی محافظت کند. در سال 1903 که خبر رسید کشیش جدیدی میآید، زن هنوز با بچهش آن کلبه زندگی میکرد. نصف مردم شهر خود را به شاه رسانیدند تا منتظر رسیدن کشیش باشند. دسته موزیک ده قطعه های احساساتی می نواخت که بچه ای که از شدت نفس نفس زدن داشت پس میافتاد دوان دوان آمد و خبر داد که قاطر کشیش به آخرین پیچ جاده رسیده است. آنگاه دسته موزیک و از احالت دیگری به خود گرفت و به نواختن مارش پرداخت. کسی که برای خوشامدگویی تعیین شده بود روی سکویی که موقتی ساخته بودند رفت و منتظر شد تا سر و وکلی کشیش پیدا شود، و او بتواند قطابه را آغاز کند اما لحظه بعد موسیقی غد شد و سخنران از سکو پایین آمد و جمعیت حیرت سده بیگانه ای را دیدند سوار قاطری که بزرگترین ترین صندوقی را که ماکوندو به خود دیده بود بر پشت داشت مرد بیان که نگاهی به کسی بیاندازد به سوی شهر رفت حتی اگر کشیش به خاطر سفر لباس شخصی پوشیده بود باز هم به ذهن کسی خطور نمی کرد که آن مسافر آفتاب سوخته با آن زنگالهای نظامیش کشیشی باشد که لباس شخصی پوشیده و در حقیقت هم کشیش نبود زیرا همان لحظه در سمت دیگر شهر مردم کشیش عجیبی را دیدن که از راه میان بر می آمد و به طرز حول لاغر بود چهرهی وارفته و تکییده داشت و با پاهایی گشاده بر قاطری سوار بود و لبادش لب تا سر زانو بالا آمده بود و چتر رنگ پریده و زهوار در رفته ای را برای محفوظ ماندن از آفتاب روی سر گرفته بود. نزدیک کلیسا که رسید سراغ خانه کشیش بخش را گرفت و گویا از کسی سوال کرده که کوچکترین اطلاعی در این مورد نداشته است زیرا جوابی که گرفت این بود. همان کلبه پشت گلیساست بدر زن زنخانه نبود اما بچه داشت پشت در نیمه باز توی کلبه بازی می کرد کشیش از قاطر پیاده شد و چمدان پروپیمانی را توی کلبه کشند در چمدان چفت نبود و دو سر آن را با نواری چرمی که از جنس خود چمدان نبود به زور به هم رسانده بودند پس از آنکه کلبه را وارسی کرد رفت قاطر آورد و توی حیات زیر سایه برک های انگور بست. بعد چمدان را باز کرد و ننویی را از آن درآورد که به اندازه چتر کنه بود و به همان اندازه هم مورد استفاده قرار گرفته بود. آن را به طور مورب در طول کلبه میان دو ستون آویزان کرد. چکمایش را درآورد و سعی کرد بخوابد بیان که به بچه که با چشمان هر آسانش به اونینگریس توجه کند. هنگامی که زن برگشت، گویا از حضور غریب و بهتنگیز کشیش که صورتش چنان بیحالت بود که با جمجمه گاو تفاوت چندانی نداشت، احساس آشوب و تشویش کرد و پاورچین پاورچین توی اتاق رفت و تختخواب خواب سفری تاشوی خود را تا دم در کشند و لباسهای خودش و کهناهای بچه را بخچه کرد و بدون دلواپسی برای کوزه سفالی و سبو کلبه را ترک گفت. زیرا یک ساعت بعد وقتی اعضای حیط نمایندگان که دسته موزیک در پیشا مارش مینواخت در میان انبوهی از بچه که از مدرسه در رفته بودند از جهت مخالف به شهر باز می گشتند کشیش را در کلب تنها یافتند و دیدند که با حالتی آسوده با پاهای گشاده در ننوش دراز کشیده دگمه لبادش را باز کرده و کفشش نیز درآورد است یقینا کسی این خبر را به مردم توی شاه را رسنده بود اما اصلا به ذهن کسی خطور نکرد که بپرسد کشیش دران کلبه چه کار میکند لابوت فکر کرده بودند که او باید به نوعی با آن زن مربوط باشد و به همین دلیل بوده که زن کلبه را به او واگذاشته زیرا فکر میکرده کشیش حکمی برای اشغال کلبه دارد یا اینکه که کلبه جزو املاک کلیسه و یا صرفاً می ترسیده که شاید از او بپرسند چرا بیش از دو سال در کلوی زندگی کرده که به او تعلق نداشته و هیچ پولی هم بابت اجاری آن نداده یا از کسی اجازه نگرفته است نه آن وقت و نه هیچ وقت دیگر اصلا به فکریت نمایندگان نرسید که توضیحی از او بخواهد زیرا کشیش حاضر نشد هیچ خطابه را بشنود هدا را کف کلبه گذاشت و تنها به سلامی سرد و شتاب زده با مردان و زنان اکتفا کرد زیرا که خودش می گفت، تمام شب را چشم بر هم نگذاشته بود اعضای ایت پس از این برخورد سرد با عجیبترین کشیشی که, که تا آن وقت دیده بودند پراکنده شدند آنها متوجه شدند که سر او با آن موی خاکستری به دقت کوتاه شدهش تا چه اندازه شبیه به سر گاو است و لبش اصلا لب نیست بلکه شکافی افقی است که در بد به تولد آن را هم نداشته و بعدها با چاقویی تیز و مخصوص درستش کردند اما همان روز اصر آنها فهمیدند که او به یک نفر شبیه است و پیش از سپیددم هر کسی میدانست که آن یک نفر کیست. یادشان آمد در ایامی که مکندو روستای تو سری و مهاجری بیش نبود، او را با تیر و کمان و سنگ به دست دیدند که لخت بود ولی کفش به پا داشت. سربازها، خدمات و جانفشانیهای او را در جنگ داخلی سال 1885 به یاد داشتند. یادشان آمد که او در 17 سالگی به درجه سرهنگی رسیده بود و مردی بود بیباک و سرسخت و مخالف حکومت. اما تا آن روز که او به زادگاهش برگشت تا تصدی امور کلیسا را به عهده بگیرد کسی خبری از او نشنیده بود. کمتر کسی اسم کوچک او را به خاطر داشت. از طرف دیگر بیشتر کاهن سربازها همان اسمی را به یاد داشتند که مادرش رویش گذاشته بود. زیرا او پسری خودسر و یاغی بود و همان اسمی بود که هم هم‌قطارانش بعدها در نظام به او داده بودند، همه طول سگ صدایش می و همین اسم بود که در ماکوندو تا دم مرگ رویش ماند، توله طول, طول بدین منوال بود که این مرد در همان روز و ساعتی پا به خانه ما گذاشت که طول سگ به مکندو رسید اولی از جاده اصلی و بسیار غیرمنتظره منتظره سر رسید بیان که کسی از اسم یا از شغل او تصوری داشته باشد و کشیش از راه میان بر در حالی که تمام شهر در جاده اصلی چشم به راهش بودند پس از مراسم خوشامد به خانه برگشتم تازه سر میز نشسته بودیم کمی دیرتر از معمول که ممه با عجل خود را به من رساند و گفت: « سرهنگ، سرهنگ سرهنگ غریبه ای به دفترتان آمده و میخواهد شما را ببیند. گفتم: بگو بیاد تو. ممه گفت: توی دفتر نشسته و میگوید باید فوراً شما را ببیند. ادلایدا از خوردن سوپ به ایزابل دست کشید. قاعدتاً ایزابل در آن موقع پنج سالش بیشتر نبود و رفت از تازه وارد پذیرایی کند لحظه بعد با حالتی که نگرانی از آن میبارید برگشت و گفت دارد توی دفتر قدم میزند از پشت شمدان آدیدم عدلایده برگشت بعد دوباره با خوراندن سوپ به ایزابل مشغول شد من که غذا میخوردم به او گفتم باید میآوردیش تو؟ و او گفت همین کار را میخواستم بکنم اما وقتی آنجا رسیدم و سلام کردم داشت با بیتابی توی دفتر بالا و پایین میرفت و جوابم را نداد چون محفه تماشای عروسک چرمی بالای گنجه بود خواستم دوباره سلام کنم که او عروسک را کوک کرد و آن را روی میز تحریر گذاشت و سرگرم تماشای رقصش شد اما مقابل میزی ایستاده بودم و او خم شده بود و رقص عروسک را که هنوز از کوک نیفتاده بود تماشا می‌کرد عدل داش به ایزابل سوپ میداد. به او گفتم باید بس باب بازی خیلی علاقمند شده باشد و عدل که همچنان به ایزابل سوپ می گفت داشت با بیتابی توی دفتر بالا و پایین میرفتم، اما و چشمش که به عروسک افتاد از روی گنجه برش داشت انگار از پیش میدانست که به چه درد می خورد و انگار میدانست چه جوری کار می کند. دفعی اول که به او سلام کردم داشت عروسک را کوک می کرد و صدای موسیقی بلند نشده بود بعد آن را روی میز گذاشت و به تماشایش ایستاد اما هیچ لبخندی نمیزد انگار به خود رقص علاقه ای نداشت و فقط نسبت به طرز کارش کنجکاف بود هیچ وقت ورود کسی را به من خبر نمیدادند. تقریبا هر روز کسانی به دیدنم می آمدند. مسافرانی بودند که میشناختمش آن و مرکب هاشان را در طویله میگذاشتند و در نهایت اطمینان و با سمیمیت کسانی که همیشه انتظار دارند سر میز جایی برایشان خالی باشد به خانه ما میآمدند. یاد گفتم بایستی یا مل پیغامی چیزی باشد و او گفت به هر حال رفتار غریبی داشت. عروسک را تا تمام شدن کوکش تماشا میکرد. و من هم پشت میز زیستاده بودم و نمیدانستم به او چه بگویم چون میدانستم تا وقتی که صدای موسیقی بلند است جوابم را نمیده بعد وقتی که عروسک مثل همیشه که کوکش تمام میشود تکان مختصری به خودش داد او بهجایان که بنشیند خم شده بود و با کنج غرق تماشای عروسک بود بعد به من نگاه کرد و فهمیدم که میدانست من توی دفتر هستم اما اصلا اهمیتی به من نمیداده چون میخواسته بداند که عروسک تا چه مدت میرقصد؟ دیگر به او سلام نکردم، اما وقتی چشمش به من افتاد لبخند زدم، زیرا دیدم چشمان گنده ای دارد، با مردمک زرد که به یک نگاه تمام قد و بالای آدم را سیر می کند. وقتی به او لبخند زدم همچنان حالت جدیش را حفظ کرد ولی سرش را خیلی خوشک و رسمی تکان داد و گفت خود سرهنگ، خود سرهنگ را باید ببینم. صدای بمون کلافتی دارد، انگار با دهان بسته میتواند حرف بزند. انگار از توی شکمش صحبت میکند. کند. آدلایدا داشت سوپ ایزابل را میداد گفت: اول توی دفتر بالا و پایین میرفت. بعد متوجه شدم که مرد غریب تأثیری غیر عادی بر آدلایدا گذاشته و حالا او به پذیرایی من از آن مرد علاقه خاصی پیدا کرده است. با این همه، در همان حال که او سوپ ایزابل را میداد و حرف میزد من نهارم را میخوردم. آدلایدا گفت: بعد وقتی گفت که میخواهد خود سرهنگ را ببیند، در جوابش گفتم لطفا به اتاق نهار خوری بیایید و او همانجا که ایستاده بود، عروسک به دست قامتش را راست کرد. بعد سرش را بالا گرفت و مثل سربازها شق و رق ایستاد یعنی فکر می چون پوتین ساق بلندی پایش بود و پارچه لباسش معمولی بود و دکمه یقه پیراهنش را هم بسته بود. وقتی جوابم را نداد و ساکت ماند نمیدانستم به او چه بگویم با آن اسباب بازی که توی دستش بود انگار منتظر بود من پایم را از دفتر بیرون بگذارم و دوباره آن را کوک کند. وقتی که متوجه شدم او نظامی است تازه آن وقت بود که ناگهان مرا به یاد کسی انداخت و من به آدلایدا گفتم باز تو فکر می‌کنی که موضوع جدی از بالای ها به اون نگاه می کردم نگاهش متوجه من نبود داشت سوپ ایزابل را میداد گفت وقتی آنجا رسیدم داشت توی دفتر بالا و پایین میرفت و نتوانستم چهرش را ببینم اما وقتی آن پشت ایستاد: سرش را طوری بالا گرفته بود و چشمایش طوری خیره مانده بود که حالا فکر می کنم یک نظامی است به او گفتم شما میخواهید سرهنگ را در خلوت ببینید اینطور نیست و او با سر تأیید کرد آن وقت من آمدم که به تو بگویم او شبیه یک نفر است و شاید خود همان کسی باشد که به او شباهت دارد گوین که نمیتوانم توضیح بدهم چطور اینجا آمده هنوز هم غذا میخوردم اما او را هم از بالای شهمدان ها نگاه میکردم از سوف دادن به ایزابل دست کشید و گفت حتما پیغامی در کار نیست. شک ندارم که شبیه کسی نیست، بلکه خودش همان کسی است که به او شبیه می نماید می توانم بگویم تا حدودی مطمئنم که او یک نظامی است، سبیل مشکی دارد و صورتش به رنگ مس است. چکمه پوشیده و مطمئنم که شبیه کسی نیست، بلکه خود همان کسی است که به او شبیه می نماید عدلایده با لحنه یک نواخت حرف میزد بیزیر و بم و مداوم هوا گرم بود و شاید به همین دلیل کم کم از کوره در رفتم به او گفتم پس شبیه کی است؟ و او گفت وقتی توی دفتر بالا و پایین میرفت نتوانستم صورتش را ببینم اما بعدش دیدم و من که از یک نواختی صحبت و تداوم کلماتش به تنگ آمده بودم گفتم بسیار خوب بسیار خوب وقتی نهارم تمام شد میروم او را ببینم و او که باز به ایزابل سوپ می گفت اول نتوانستم صورتش را ببینم برای این داشت توی دفتر بالا و پایین میرفت ولی بعد به او گفتم لطفا بفرمایید تو او عروسک به دست و ساکت کنار دیوار ایستاد آن وقت بود که یادم اومد شبیه کیست و آمدم به تو خبر بدم چشمای گنده و گستاخی دارد و وقتی برگشتم تا از اتاق بیایم بیرون احساس کردم که او درست به پاهایم خیره شده. ناگهان ساکت شد. در اتاق نارخوری صدای جلنگ جلنگ قاشق همچنان بلند بود. نهارم را تمام کردم و دستمال سفره را تا زدم و زیر بشقابم گذاشتم. در این هنگام صدای موسیقی شادمانه عروسک کوکی از دفتر بلند شد